الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاقلنا المعصومين وعلى سيدنا تعالى على دائمين أجمعين الله رسول الله هست که یک مقضایی برای آشنایی بیشتر با مسائل سه بعد از کلمات سنی شیعه خونده بشه تا بعد نکاب را برد برگردیم انشاءالله به حد نهایی خود روایات این کتاب المغنی ابن قدامه این جلد که من دارم البته این من به صفحه 16 به بعد بحثی رو مفرح کرده که این بحث در روایات ما هم آمده لیکن به این نحوی که الان هست نحوه بعد میخونم روایاتشو میخونم در روایات ما هم آمده و این بحث معروفی بوده در اون زمان به نحر سنه ظاهرم بین شیعه هم بوده اما به این نحوه مفرح نشده بود و هر یست تا و ساهر فیه روایت هاست ما همان لا يستطاب و غضا هرمانو قلعن السحابه فه انهو لمیون قلب احد منهم انهو ستطاب صاحبه یکیش بحث صحابه است بردم بعد از اون قصه ای که خانم داره که توبه که صحابه یکی همه توبهی داره شنگه ی اون ده را هم ما داریم که پیربر آن که در تلبه ها همه دریا ها را خراب کردیم چین کرد کرد. برای اونسهلی برای شوهرم شودیم. اون روات هم از طریق تکونی مسییده چون میالایی تنگوارد این بحث طولانی شدیم شاید ان تای کمی اووازه دستتر کنی یا روات در باب سر مییم. دوم میشم این نکته بود و رم سهح من که لا و به توبه، همین که من توضیحاتش عرض کردم و در حقیقت باید این که انما این رو بخواد بگم آیا خود سر حرامه یا تعلم سر اگر تعلم حرام باشه دیگه قابل توبه نیست. و روایت حسانیی اختصاب چه انتاب قبل از توبه تو. این توبه تو یعنی قبل از یعنی قبل از اون برداشته میشه چون ما یه قبول توبه در باب مرصد در ظاهری که هم داریم باثینی باحتیم این که روی زدی آمد خدا نظر ببور کن ظاهری اون احکامی رو که برای مرتد گفتند برداشته بشه. چون در روایتی از محمد از مسلم آره اینکه زهن من این طور از امان باغه شماق حکم برای سا برای مرتد آمده یکی اینکه که یقتل یکی این تبین و زوجته رو و یقف مال او و لا تقبل صحبت تو رو یعن اگر تقبل کرد این احکام برداشته نمیشه اما این جهت ظاهری اصطلاحا توبه ظاهری اما توبه باطنی واقعا توبه کنم خدا روز رو رو میگرش لعنه حوله ایسه به اعظم منش شرق و مشرقی و ستا تعبیر اینجا و مشرق داره لکه معروفتر و مرتد نه مشرقی اصولا مشرق, مشرق روی اصطلاحا در آیات مبارکه، در حد، کسانی که در مکه بودند در نام پیروان بس یعنی ما یک اصطلاح کافر داریم یک اصطلاح مشرک داریم کافر کسیه که ایمان به خدا نداره و به توحید یقین میشه کافر یکی کفار اهل کتاب که منحصر در سه چیزه یهودی و مسیحی و مجوسی گازوشی یکی کفار غیر اهل کتاب که اونها نیشه به سا بچپرستدن ازوان تحبیر مشرک میشه بقیه یا ملاحظه یا ملحق تعابیر خاص خودش داره پس تحبیر به مشکل درست نیست ارز کردن سریعترش اینه که مرتد و این توضیح فرمیش رو ارز کرد این کسان که صاحب حکم مرتد رو داره همون آثار رو داره اگر مرتد یستقاب اینم یستقاب مرتد لا یستقاب اینم لا یستقاب این نقطه شده کرد فر و در مقابل قولی بود که نه ساهر اصلا با مرتب فرق میکنه اصلا لا توبه توبه توبه توبه توبه توبه این یکی با اون فهم میکنی که توضیح شده ولی مشرق یستتاب و عرض کردیم که غیر از عنوان مشرک و اهل کتاب و اینها و غیر از مرتب عنوان زندیق هم داشتیم اصلا مرتب دهن که زندیق لا استتاب اصلا زناده هستانی بودن که امکار شرای الهی و اصل عدیان رو میکردن و اینا مخصوصا حالا یا چون اصول ایرانی داشتن مخفی بودن از سال 128 قبلی زمان امام صادق اینا زهور و گروز پیدا کردن تا سال, سال 58 به مهدی عباسی در زر به زنگر کشی دیگه سر سرز که مهدی من دیگه خیلی زناده رو کشت مثل این بام کشی در جمعانه که اصلا و المشرفی و ستاق این راجع به قسمت و معرفت و عبسه لا تمنه قبول توبتیی اون اشکال که تحلق علم علم قابل زبال نیست نه اشکر شده توبه بکنه ان الله تعالی قبل توبت سهر به فرقون و جهل هم من اولیاءی پی ساهر صاحب. پی ساهر و لعن نساهر لکان کافران فرسن سهر اسلام و توبت اون فعلا سهده صحبتون نهما ما نهما سهده نهما سهده کفر این کفر بهتر از باز از اشراق ما شده بهترش هم موزده و لعن الکفر و از عقل ببینید این در حقق بچه استدلال رو عوض میکنه ما هو به عملی به سهد لا به علمی به قدر که نفیشی شد این آمدن که اونی که حرامه عملشه یا علمشه به دلیل از ساحل را اطلا ولی عملو به برده یوم کنون توبتونه و کزا لگه اعتقاد ما یکم فرق به اعتقادی یوم کنون توبتونه که شرق اون که این توبه از شرک یک معنای عام توبه من سابقا توضیح هست کردم یه معنی توبونه رجوع است. مثل یا آیوهرناس توبو الارم بکن این شاملی ایمان آوردنم میشه یک معنی اصطلاحی دیگر تو توبه این که اینکه انسان گناه کبیره رو انجام داد توبه بکنه این گزاره با همگی واسه هم اگر فرصت بود که بخش ما در باید توبه نیست راجب این مطلع توزیع بیشه از بله بعدم مسئله ای که توبه در باطن قبول میشه و نمال کلام در ظاهر ظاهرش اینه که خود معلی رأی معینی رو تعیید نمی کن. بله فصل را این فصلی که بعد این آقا قرار داده همون بحث بسیار طولانی است که ما خوندیم چندزا معاقل شدیم و سهر الگی رکر ما حکمه هو هولدی یاد دو فرعه سهرن این بحث موضوعی یعنی معلوم شد که از این کتاب که خیلی برزنان رو شکر داره, داره بحث موضوعی قبل از این همه همه شده مثل فعل لبید ابن هرسنح این سهراندی که قصه سهر پیغمبر را نمیشه که از اون روشن مید ممکنه تأثیر خیلی ضدیمی فیلی به حسن ممکنه اونم, اونم بازم بعیده و یک چیزی را هم در کتب احل سنت آمده که احتمال میدین از این قصه پردازی و از این اوها بوده که چون یک کسی بوده به نام عمارت ابن این خیلی زیبا بوده در پارش در مصال زیبایی بوده با امرآس میره به طرف نجاشی که جلو جعفره نبیت حاله رو بگیره سر همون از جعفر در حدشه وقتی وقت این الله بویا با قسمت داخلی نجاشی هم گرد میکنه که در این یک سری انجام میدن نوشتن اینجادی آن من نمیخواب و این برای اثر این سری که بشه صحب بله. این اگر راست باشه بحث پدشگیه سهر نیست در یک مقدار, مقدار, مقدار جیوه قرار داده این مشهر شد که حالا مثل وحوش شده کرد مثل همه با حیوانا زمینید این سه نیست اگر راست باشه میگرم میتونست به عباطی باشه که در اومدن بر از آجه تاریخش نیست اگر بر فرز راست باشه یه مطلب علمی است که مثلا جیوه رو اگر در یک بسمت ما اینه بدن قرار بدن انسان مثلا حالت وحشی بگیده کن چیگه سمیه بده داخل بدن <تصفح> نه داخل نرسته یاده اینجوری که ای ما بینه آنست برد بل. بردشون و بلدن ها انبعد در عمران افرد صاحرتن فجائزون جا که انه ها محترم این قصی دیگه از همین قبیل اصلا مشکل در باق سر در حقیقت البته تا الان حکمش کالی ازشکال نیست اما موضوعش دیگه خیلی مشکله این صافت از اون در هست و بعد در درم خب نیدونی دیگران زمان ما هست. همه جا تا یک قصه های و, و پرید به هوا و پرید به زمین یک چیز نمیده این قصه که رو کرده که این هم مثل همه یه مثلا یکی صاحب میده برد در بردر حالا بردر اینها معلوم نیست. عاشقانه را بگم الان ایده معتقده ای که واقعا بشر اگه وقتی امکانات داشته که مثلا روی یه قالی بشینه ببین قالی پرواز کنه سر هوای ما بدون اینکه یه موتور داشته باشه با استفاده از قوانین رسوب فضا و ایرودینامیک اینا چی یعنی یک جوری خاصی فرش درست می‌کردن یه قالی که بلند بوده رسای کوتاه بوده و مثلا جای بمونه سو داخل داره چیزی هوا که دیگه می‌خورد بلند میشه این صحیح نیست، یعنی که ایشون نوشته، میگه که قادر بودن، تو نخواود، چند تا نخ این بس رو، بسو بعد با در پرواز کرد. اگر این است راست باشه، اینا صحیح نیستن. این مشکل هست دیگه، این مشکل اساسیه. که اینا جوزه صحیح، اینا جوزه صحیح نیستن. یعنی من دیدم در درست، حتی قریه اتهامش این که این قالی شلوون که یه همه واقعی است، همه صحیح نیست. بله، بعد یه مقداری متعرضه این شده بواهدی از این از سرم اینه که مشکل کاری یعنی انصاف هست سرم مشکلش هم اینه که این مطلب یک طرفش عرفه عرف هم در این اصطلاحی که اندر حریب فیرزن او پیرمرد دهاتی و شهری و اینا بهن فعلی سوفا آقامون با تشو و, و, و بگی این سر این عرف خیلی مشکلی هستی <تصفح> چی بگو بخوای در تمام این عرف بی این گندگی یک جامعه پیدا بکنیم خیلی کار مشکلیه اوغلازه ممکن بود همین تلویزیونی که ما امروز تلویزیون از در اون زمان صابر کی آشهر داره جدی گیری میکنه اگر این هست این مشکل هست و ندا به نظر ما اینشالا بردم عرض میکنیم به نظر ما در نتیجه نهایی بهتر اینه که اول بعد از بیان حکم صح موضوع رو بعد بیاریم بگیم نگاه بکنیم یکی یکی مثلا این موضوع اماره سلیم قرآن اگر راست باشه وقتی تقدیف رفتی به صح نزده اون موضوع که راجعه به این زنکه از که سواره در شد که حالا مثلا اگر راست هم باشه این ممکنه بحث علمی هم باشه این رفتی هم به صح نداشته باشه. علایه حاله این یک مقداری البته خیلی سخت، انصافا خیلی مشکله صرف اشتالشم حرص کرده بعد حالا چی چیزای نمشده که مثلا این سر هست کسی که حکش میکنه مثلا دعا میخوان جن میارد احزار میگه این سر نیست از خیلی این هست اون نیست بسیار کار مشکلیه ما با یک نارده دارم خودش رو دارمانه حساب بخورم مطلب بعدی که بیشون داره و اما منیحل سه این بحث حل سه سابقا هم خوندیم و از عباراتشون حالا باز دو مزهره میخونیم فه امکانه به شیعه من القرآن و شیعه منزدرک و اقسام و کلام لگیلا بحث به از فعن یعنی مثلا اقسمه علیه جا کلان مرادیه فلا بحث. این اشتال نداره به امکانه به وقت توقف احمد و ان مرادش ابنه همبل امام شده افت کرد این بحث از زمان صحابه مطبخ شده عبارت فتحالباری بخوندی اینجور کامل نیورده و ازده اعتقادشون این بود که حل سه صحر با سه را اشکال ندارد عبارت رو بخوندن اگر یاد مبارسون باشه و تحلیل علمیشم گفتیم اشکال در نتیجه نهایی عرض می کنن. و ادهیم گفتن حل سر فقط با قرآن ما هم داریم این توی این موضوع ما هم داریم لکه اون چی که ما داریم مشکلی اینه که یک شخصی ادهان رو من ساخر بودم بعد توبه کنم رفتم به امام سادر عیسیم احلیم محور شغال هل را ساخر عقد نکن اما حل بکن نه اما باز بکن تساب وسائل هم این رو بود و سا گفت سایه گفتوید که درکتر باید بعض, بعض علمان که حلش هم باید به دعا و قرآن باشه نه به سهر. چون از که میگه حرامه اینجا رو میگید ما این توضیح رو در زیر عباس فتخولباری پرست کردیم از عباس فتخولباری اینطور معلوم میشه که ادهی میگن سهر به نفسه حرام نیست اگر اضرار باشه حرامه لذا حل و سر به سهرم این شال از نره اما ای گفتیم سهر به نفسه حرامه چه عقدر چه حلر حرامه سهر خودوشم آید با حامی با آب نیست که اون شهر که از خلاف قرآنی قرآن نیستی یه چیز مندر وردیه یاسین و رو همه این کنم که اگر در حال اون مطلب درست باشه دانشجوی یاسین مغربی تو هست در فرض اون مطلب درست باشه اون هم سهم می‌گیره این تکطورش جوائز میشه الان امام امام جو جواب کنه اصلا اون تا مرخ خودی یاد یو یعلمان سه‌ بله ما یا من اهل حتی یهو لا یعلمان احنا قسمنا اصلا خوب خدمت دقت بفرمایید اون بحث فنی اینجاست که روایتی که ما داریم حل ولا تعقید تعبد. حق نکن اما حل بکن آیا ما این روایت رو به چیون معنا بکنیم یعنی حل سه به سه بکنم یا معنا بکنیم حل سه به قرآن بکنم راهی من امده این را تندیه علمی شو بخارم راه تندیه علمی اینه اگر ما باشیم و ظاهر کلام که مجموعه این دیگه بخص نده، این یعنی حل طول قرینه لا تحقیل به سهره احتمال به سهر باشه یه قرینه خارجی هم که شارعه اصلا به سهر علاقه نداشته باشه احتمال حل به به سهر باشه. مشکل کار چیه؟ اینجور عبارات رو ما باید با چی حل بکنیم؟ با تهم اجتماعی یعنی ما نیمتونه با کلمه لغوی یا مادلی لغوی و همینطور مثلا کلمه حل ولا تحقیل از او در بیاریم این رو ما باید درگردیم به مشکل کار اینه که چون این بحث از زمان صحابه مفرد شده و بعد صحابه و ظاهران از همون اولا دو رعی تو مسئله بوده نه یک رعی یک رعی این بوده که حل صحر و با خود صحر اشکال نداره که توضیحشن گذشت نقطه فنیشان از کرده یک رعی این بوده که حل سه باید به غیر صحر مثل قرآن و دعا و اینا البته اینه که اینجا داره که احمد, احمد تقریبا در حید ست سال بعد از امام ساده خوب دفع بکنی کلام احمد نمیشه تصرف بشه در کلام امام ساده امام ساده دانا برمشه 248ه نه از انسه سره احمد 241ه احمد نهنبر ست سال بعد از امام ساده میکن عبارتی که ما صابران خوندیم نشون میده از اهدسها به اختلاف است. یعنی به عبارت دیگه ما باید این عبارت رو با شواهد تاریخی خودش معنا بکنیم نه با مجرد مدلول لغوی کلمه یک بولی درالا ترد وقت مشکل چیزه درست میکنه شواهد تاریخی در هر روزه نفرند. یعنی به دو طرف بوده یکی اینکه حل و صحه به صحه بکنی یکی اینکه که حل و صحه به, به قرآن بکنی حل و بوده و هرگان قبل از ما مساعدت موجود بوده خود دقیق چون هرگو قبل از امام صادق موجود بوده نمیتونه کفایت بکنه ولیزام سابسال گفت و حکم حلصه چون گیر از سابسال حق هم بایشانه هم به لحاظ لحظی مشکل داره هم به لحاظ فرعان خارجی مشکل داره اون مسئله روشنش بکنه اما میشه نتیجه گیری نهایی که که از این باشه شاید نتیجی. یکی اینکه حلسه حل به قرآن و عدیر اینها دو خل و سه بشه به عملی که مباهه پس مثلا این آقا چون خودش شاهر بوده میدونه سهر روی که بسته به این بوده که یه قفلی مثلا بسته این بره قفل رو باز بکنه یا مثلا به اون آقا میگه من سهر کردم یا این کوزه مثلا باقل خودتون آب ندیده سابرا کوزه میگه کوزه آب ندیده تو خونه زریده مثلا میگه بله کوزه کچیک آب چون سهرات اونه غالبه تو آب ندیده بشون. ممکنه بگیم که روایت هردالالا سختت شامل اینها میشه یعنی به عبارت دیگر نیاز به سهر نداره خب دقت بکنید کنید نیمیخواد که حل و سهر رو به سهر بکنه. میدونه سهر راه شیجوری جلو اون راه رو میگیره یا مثلا میگه در آمده از جلو ببکنه مثلا یه سخونه ماهی یا سخونه مثلا گوسفنگی چیزی بازاشت یا با قلقه قدیمه چشم گوه چیه پس رو با چی این چه خدا خرگوش اون انفهش حساب اون پنال مایشه اینا چه دلیل آورده سرش باشه یا چشم خرگوش اگر این مثلا جام در خونه یا فلان چیز دیگی این سحر تو این شده اینو مثلا تو آتش انداز بده شود اگر کل لغات تعتید رو ببین معنا بگیرید چون ایشون بر اثر اطلاع اطلاعی چنان فرمودین اطلاعی که از سحر داره نه اینکه این بیاد باز یک چه دیگه برای اون کار انجام بده اون رو اصلا بگیم مراد از حل سهرم اینه در این روایات یا همینطور که اده از صحاب احتمال در مراد با آیات و روایاته یا نه تو چون تخصص داری میدونی که سهر چه جوری واقع میشه اون سهر رو بردار نه اینکه که تو بیا باز اون ساهر اصلی رو سهر بکن نه اون سهر رو بردار این هم توجیه نهایی راجب به اون حدیثه حلالت بعد ایشون یک چیزایی چه بله. یک چند تا پسه هم نهر کرده که حالا پسه رو دیگه خداهایی مراجعه کن چون این چیزه یکه و رو میان محمد اطن سیرین محمد اطن سیرین جزا تابعینه در بصره بوده پیش میکنم اگه حافظه من خرار نشده و خواهش حدود 110 یعنی زمان امان باقیه من چند بار عرض کردم از این دو تا بصری یکی محمد بن سیری و یکی حسن بصری که تمام در یک زمانه، خودشون از نه بعضی کلمات نقد شده بله که شبیهش در روایات ما هم موجوده هروزانگی این چیه چیه چیزی خود من هم نمیگم بله بعد از محمد بن سینی حافظی که یک جشن سالگرد تقال محمد ما اعلم بقراءه القران دستا علهام ولا ادري خط او که مثلا خط میزنی شماهای بزرگ شن چی کلام برای اون که من برای رو نشون ندن ولا ادري من خط و سكين بهتره من شاید اینه این که دیگه ببینید این محمد بن سینی قبل از امام صادق اصلا وفاتش هم قبل از قرادیه امام برای امامت. مضافاً به اینکه کلمات او و حسن بن علی اثر در روایت اهل بیت می دونم ان وقتی توضیحش رو عرض میکنه. ما اعلم بدراات القرآن باسن. معلوم میشه برای حل نظر شریعت القران می ما این عبارات رو به لحاظ تاریخی می تونیم به خاطر اینکه یک این انعقاد ظهور بشه در کلام امام فرمود هل ولا تحت تا اینکه میخوام بگم نه به لحاظه فتوای محمد نصفی باز روی انزیده روی یا انزیده مسید این هم از تابعیم مرد معروفی مرد فراجل باز شو بکنم برزی ها نقطه فرنی دار برزی ها دا نمی نکته برزی یا نقطه و فراجل یو اخر این سیده یو اخر بخونیم باب تفعیل یا اخر این باب تشکیلش در اینجا تفعیلش برای چین شد و اولن برای شد واقعی و کثره معانی از موانید دلعله کثرت معانی معانی الکثر ما این برای این جهت این برای تشریح یاخذان امراه یعنی گای کاری میکنه که به زنش احروت نکنه این اسلامی به آخر تیل تم سمر یداوی دنبال کسی است که العلاجش بکنه اینجا داره فعال این ما خوندیم عبارت به اصطلاح فتل انما نهلا و این عبارت تکرار در, در مدینه بوده ممکن در خود مدینه اون یکی در بوده این اشعاری که من تا قبل اینو ایشون اشکال نداره هر بیت رو با شعر بکنه چون این شعر دوم ناطقه این معنی این سه و قال ایزن نسته تر تن تن و اخواق فردن پس بنابراین دو تا عبارت از امام صادر سامون دارده هست یکی در مدینه ظاهرش ای که حلی صحر با سر خوب درست اون نقطه فردی به زن و این نقطه میخونیم عبارت رو برای سحر در روایات مقدمی که ما داریم به قرآن خارجی با مراجعه کرد این رجوع به قرآن در مدیود تصویری داره نه تصوری که مزدود جدی امام از هلولا ترقید چیه بیرین الان ما از سیدن مسید که احل مدینه از داشتیم که حل صحر به صحر بکنه و از ابن سیرین در وقته داشتیم که حل صحر به قرآن بکنه و هرزان قبل از آن صادق لذا نزا این هلولا ترقید امام صادقه چیجور منابه این مفیقه از ما که ذوقی عبارات اونها رو بیاریم نه بلی که استشهادمان احادیث بکنیم برای این عباد ضرور تفصیلیه کلام و معلوم شد اون راه تنی که سید عثومه و غیره طالبی نه که دقیق بر کلام مش نکات داره اون نکتهش اینه این در که اول اگه اون بحث بشه فکرن که یکی از نکات مهم در فقه ابتدااً موضوعاتی بود که هنوز نگفتن اتفاق بشه ایشان چیجور از استدلال کرد؟ استدلال سعید نون سعید واضح شد استدلال سعید به آدم که سر فی حرام نیست سر تابع آساب میشه اگر جای موزر بود حرامه جای موزر نبود حرام هیت تصور این پس بنابراین حل و سر به سر اشار تصور این کسید این چیه که سر فی حرامه مطلقه هست میخواد برای حرف باشیم خ حسین عمل عمل حرامیه به میکنی ولو برای مع اگر شما آخر حل رو کنیمیم باید بابارها انجام کنیم، پس در حقیمت ممکنه زیربنا این تفکر این باشه. که آیا از ادلت از صرفی نفسه حرامه اگر این زیر بنا را قبول بکنیم خوب دخ کردیم این روشن پر شد، ما برای مدول تصدیقی که مالات طرف چیه یک؟ مراجعه کردیم به شواهد تاریخی. دو مراجعه کنیم به زیربنای فکری تحلیل علمی مسئله اون تحلیل علمی مسئله اینه اگر سه حرام بود فی نفسه حل با قرآن بشه اگر سه فی نفسه حرام نبود حرام به جهد اضرار بود خب آلا که حل و سهر اضرار اصلا تلاله هست در روایت ما متاسفانه هیچ کدون شواهد رو چون یک ربایت واحدت نظیر نداره نمیتونیم الان ما باشیم و ذا رو در بیان اون از طرف دیگه اگر ما اون شاهد و عرفی رو قبول بکنیم انضافت شن هر دو بوده البته كلام کلام سید نوساید در مدینه بوده به کلام امام صادق ندید کرد اگر زیر بنا رو بگیریم و تحریر علمی و تقییش رو بگیریم انصافشم در مجموعه روایات ما یک روایت سریح واضحی خوصا از علمه علیه موسلا که سر با انگام حرامه خیلی واضح سهد و واضح ها دلاله هم نداری. اجمالا درمی آت اما یک روایت سریح لحظی نداری بعد ایشون داره که پس رو فهم ما در سلال دنستا چند تا عنوان از منظره که کاهه که اللبی لبو رعی یا من الجن یعنی جنی رو که میبینه دیگه نو بکنید که رفتی هم به با نخنفی نظره فصل رو فا اهل کتاب فلا یختن به سهره ساهر و کتاب کشته نمیشه الا ان یقصره مگر اینکه با سهر یکی سی رو بکشه و هون ما یقتربی که غالبا حالا یک بر... شما توی بحث خودمونم ازمه سابقا هم ازکرمی این در میان اهل سنر و بعضا در شیعه هم شده حالا شیعش مثلا که مثلا در شیعه اشکار اکتفاق باید به کلمات و استاد اونا رو خورید در مبانی تقریبه که اگر با سهر کسی کشت یقتربه اساس میشه خب اشکار معروضی که از اهل سنر هم ازدهیشون گفتن اما ارده از احل سنت اشکال کردن اشکال معروفیست از شیعه هم اشکال کردن اما اون شفتونسی هم اشکال کردن و حاصلش اینه که قبل هم که در اشکساز هست شردش اینه که تر ترسط آلت قبل انجام جام بگیرد یعنی آلتی که یختلو به ها غالبا مورد قبل هم بیر این قبل هم نیست و اخصیم جز آلات قبل نیست اشکال اینه مرحوم شهر همین اشکال کردن فهمونه که لا یختلابه نه اینجا برای اینکه ای این موچیکل حل اینطور گفته الا انیق به و وغن ما یختلابی غالبه هست یعنی به عبارت دیگر این قیل رو زده سهری باشه نحوه سهری باشه که در نظر و عرف یعنی این قطاله هست میکنه مثلا پسه آلات در درستاداش شمشیر بود بعد ممکن است با توفر می بشه بعد ممکن است با اشعه لیزر بشه بعد ممکن است یک کسی با دستش با انگشت متعارفه که یک اشاره میکنه طرف رو میکشه یا با چشمش یه نگاه طرف رو می میگن فرق یعنی این نیم یعنی نقطه چی شد؟ اگر مثلا کسی کتی رو سه و کرده این طرف خودش رو و دفره این منطقه و که این جذبه در نظر غرف و آلات قتاله نیست دیگه حساس نداره اما اگر سه به یک درجه رسید که حالت قتاله شد میگه این اثر داره پس آمدن اینو را و از این راه پیش کشیده مرحوم استاد بحث و از این راه پیش کشیده چه میخواد حالت قتاله باش یا نباشه این به. چرا؟ چه اشون در حقیقت قصد باید قصد مستند به دیگری باشه اگر بگن این آقا قتل فلان کافیه بگنم بگن قتل فلان اصناد قصد با اون داده دیشه آیا زیر بنای این بحث چیه؟ همینی که الان عرض کردیم خب ظاهر این عبارت همین. که زیر بنای بحث اینه لیکن به احتمال بسیار قوی بسیار قوید خود اصدادم اما بزه شده ا احتمال بسیار گرمی داره که زیر بنامی بحث اون بحث دیگری بود که مطرح شد که سالا چند بار کرده که آیا سر حقیقت داره یا نداره تو کنید اگر گفتید سر حقیقت نداره پس لای اختلابه چیزی نمیده این با امهام یا با قدید آمهام ما لای اختلابی کردی؟ کنید احتمال داره کسانی که از اهل سنت هاره بودن که یک طلبه یعنی بودن که اضاقه طلبه سه یک تقصومه و یک طلبه اونا نظرشون بیدیم بوده که سر حقیقت داره در مقابل ازده میگوستن سر حقیقت نداره خب اگر حقیقت نداشتون میشه خب یک طلبه مثل این که انسان یک خیالاتی میگره اوها میگره بعد از قمع خوصه فوز بوده این حقیقت نداشته لذا ممکنه که زیر بنای این مسئله یک مسئله عادت قتاله باشه دو ممکن دیگه برای این مسئله این باشه که آیا سر حقیقت داره یا امر رحمیه تو دقت کسی که میگفته سر حقیقت داره اضافه تر به سر مختل بده کسی که میگفته سر حقیقت نداره امر رحمیه اضافه خر به سر لایو خر بده تناقض <تصفيق> کیان باشه حالا میتونه باشه و تخیل باشه بازم میتونه اینکه بتو بکشه ها این را که شماインスタ به یک دریای نشون میده برای کشتی و این برای نجات خودش نشون میده که از بالا میشونه نجات میگیره چه به تخیل امنش با هم تخیل رو باشه چه میگیم مخاطر عمدی بله آره توی تعریف نمیگن نمیگه خود فرض کنید حالا کسی میگه چون خدای خودی واقعیت نداره بگین چون مت چه سن تو از چه چر تو مبانی تکنیلی نهاج نمیشن به این آده این قول نازم سر حیلت نظره لیکن عرفن قضی یستن رو داره این اشکالی ما برگوید این که همه این اصرار آقای خوبید که این عرفن و ما درست در قتل عمد باید با آلازه قتاله باشید لیکن مهم اصناد رو قتله داره روشن شد من امان خوندن که روشن بشه که آیا زیر بنای این یکیه. یه این عبارتی که الان خوندیم الا انیوه ترده و قوض مایوه ترابیده خالده یعنی اگر در یک مورد خاصه خیلی مرد مثلا سه کنه مریض دیشه مرد, مرد. مرد, مرد. این که میگه نه اینجا لایوه اما اگر نه این آنها سهر که خوشنده درها حیوان انسان نه تا انجام بده به پششه تخلق نداره در اینجا قاعد میشیم که یکتر رو بینیم ببورو ما یکتر رو بینیم قاعدن و قال رو کساسن رعال ابو حمیفه یکتر اگر به اصطلاح ساحل اهل کتاب احتیار اینا داره که خرد رو اصلا ساحل اهل کتاب یکتر و به عبارت دیگر اینا یک رعی بود که من توضیح ایست دارم این رعی ابو در این کتاب مصرده دیگر آمده یعنی به زیگر نهلی در سجاد نسبت داده شده که خود ابو حنیفم در کتاب به خود ما هم اتا نسبت داده که ابو حنیفه زیدی بوده بسریکان نروسیه یه نحوه یه نحوه شمیه زیدی ها بوده حالا توضیه چه وقتی گرد شد یکتر لقموم ماسخت درمه من اله اخبار روایاتی جیدیه حد دستان درمتر وله انهو او جنایتون او جبل قتل المسلم اما بسی در صورت قتل لکن بعضی از افاراتی که مطلقم یختن معدیه به قتل میشه اگر قتل هم شد جنایتون او جبل قتل زمنی که به قتل اونجه به کشتن میشه این وله انهو جنایتون او جبل قتل المسلم این فرقش در مهم خودشی ای یک آیا زمنی کشتن میشه یا نه و به هستیتایی مسلمتن میره پشت کش کشتی میشید ولنا دریگ ما بلی که لای اختر انه لبی جبن احسن سهر فلن این مطلب که بیسا عمل هنابله محتردن که پیغمبر لبی جبن احسن رو نکش احسن که از اون مشکل و از اجایب کار اینه که این استدلال و بعدیشن وله انشهر که سره سهره ولای اخترابه شهره البته اینجا کمه اما یک تطور هم داره عجیب اینه که این استدلال احمد بن و در اون کتابی که من بردی روی مومنم آمده خیلی عجیبه این کتابی از سنند الاح... الاحکام نه اگر آن نه هم شیعه از به آن هم هم داره که علی او و لعن رسول الله یک پل او دربیرنا رسول الله البته راجیه بلدی بن چون دو وجود داره دیگری که باعث ایشون ناقصه یا این که جزء مشکین بوده یا این که ایشون جزء انبوز کفار میده یا این که جزء منافقین بوده یا این که یوزی یهود بوده این و نظام و و نظامشون فرموزه وله هم نشهر که هم دومن سهره ولا یختلو شرک شرک شرک نبود اهلی کتاب ولا نفاق ای داره این استدلالش. بنابراین که لگی لبنه هرسن منافقین باشه ولا یختلو به نفاق ولا یختلو به این الان از شرکت آدمین سحر و لندل کوف آدم این دلیل هم در کتاب ندارد، در اون کتاب ورمومی آمده. مزاحم که در اون کتاب آمده و استاد او ماست که شاید الان وقتی سلیمان را مات کرده سلیمان ولی اگر نشایتی که او قل علی و وحدا شانه در کوران این کار در اونجا آمده اما یه قسمت از روایت در کتاب سکونی آمده اینشانا ما در اونجا متعرضش میشه اینشان الله تعالی به هر حال این استدلال در کتاب در کتاب محلهای قهرز که نخوندیم تمام این استدلال عوضه و رد کرده هر دوست استدلال چی با آیه مبارکه و به چه و شرکت شرکه ادر کفره ازام اینم ارده رد کرده و از خلید به لحاظ قومت ما این کسی رو که بشن سفرد دادن زهریه و به زهری نصد داشت که صاحب رو بسته یختر و صاحب رو کفار و در روایات ما که نقل شده از روایات سکونی آمده از اصحاب خود امامیه ما نقل نکردم از امام صادق و یکی هم از همون کتاب معروفه که از کردم اینشالله چون اون رو باید, باید با بحث ما نمو خواهیم بحث حد رو متعرض بشیم در بحث سه بود دیگه مجموعی بحث حد دو قسمش رو متعرض بشیم که اینشالله ازدو کن ولن اولا اخوار برد ساحل مسلمی لنه اون یکند برو به سهره به خاطر سهر کافر بشیم و هالا کافرون اصلی و قیاسه هم که قیاس کردن که چیز یعنی تفضیم به اعتقاد کفر ولی متکلم و کسی که تکلمه تکلمه به و یمتغذو به زنا من المحسن اینکه گفتن زمی هم اگر با زمی, انجام زمی ها انجام داد یه موارد ایش رو در جواب نقضی میده این جواب نقضی از در مقابل ابو حمیفر ترده که مثلا اگر زمی زنا کرد اینها میگرم زمی کشته نمیشه خب اینجا هم بگیم سه هم داد کشته که روزگونه آج یک اشکال بین خودشون، احنا بلوا و با احنا، اما اصل استدلال اینهایی بود که شد این تا اینجا را این میگذارم، اما اینطور که این کتاب تمام بشه. یک فرد ابتدا ترتیب بحث ما جواهر هم به خاطر دنوکات و خاص خودش رو، سریع اند میبینیم ولی با چند روایت از اصلی در که از که خوندیم، اما تحلیل نهاییش نکردیم. این شان الله اونها رو به بحث تمام نکن.